بخش چهار رو سلات ظهر بود که حسن بعد از تعطیل شدن مدرسه جلام سبز شد چطوری پله همونطوری از دیروز فرق نکردم میزونی؟ آره چطور مگه؟ هیچی دارم حالتون میپرسم آه بپرس یعنی میگم خوبی؟ معمولیم اما نگفتم که دست روی دلم نگذار که خون است راستی آقا سریه چطوره؟ نظرش از آقا سید آقا جون بود که از وقتی مکه رفته تقریبا همه پشت سرش به همین اسم صداش زدند. اما خودش خیلی حال می کند که بهش هاجاقا بگوییم. من که اگر یادم باشد رویش رو زمین نمیزنم ولی مکه که سهله اگر مریخ هم برود برای من همان آقا جون است که بود گفتم خوبه بهتره اه چرا در مغازه با نریسه حالا 6 روز بیشتره نیست همین حدوده است حالا چشم میشه مامان بزرگم میگفت زونا گرفته آره؟ اگر توی این خراب شده در نشینت را به خارانی شب نشده همه خبردار میشوند آقا جونم پس پریروز در مغازه دوتا عدسه قایم کرده بود ببینید حرف را چه یک کلاک چل کلاک اند. گفتم آره فکر کنم میخوای بعد از رو برو ملاقاتش از خودش بپرس نه بابا کجا برم اما میگن زونا خطریه بقیه نگیرن ازش مهم بزرگه که نگرفتن که اگر میخواستم به همه سالهاش مو به مو جواب بدهم هیچ بعید نبود که از خواهر و مادرم هم یک خبری بگیرد جدا یک چنین اخلاق گندی دارد وانگهی، این احوال پرسی های هر روزی را نباید خیلی جدی گرفت و اگر حرفی هست، باید صاف رفت سر اصل مطلب. نه، همه خوبند. مدرسه چه خبر بود؟ اوه خوب شد گفتی. حسابی معروف شدی پسر. تک‌کلو کلی جاتو خالی کرد. تکلو نازم بی غیرتمان است. از من میگفت کجا سر کلاس؟ نه نا ناکس اومده بود سر صف مثل این که حالا حالا نمیخواد دست از سرت برداره. چی میگفت حالا؟ هیچی همون حرف اون روزی؟ می هر هرکی به مقدسات تو این کنه سزاش همینه اصلش داشت واسه ما نشون میکشید. به در می که که بشنوه. مرد که اییلنده هور بعد جور دستشان گسک داده بودم گفتم. شما اعتراضی نکردید؟ که چی؟ که این چه عراجی که پشت سر من سرهم هم میکنه؟ نه بابا ما چی میگفتیم؟ وسط نماز زدی طرف دراز کردی تلاکارم هستی؟ اون فقط یه اردنگی خوشک و خالی بود هستن دندونش چی؟ راست میگفت وقتی که خورد توی دیوار دندان آسیابش و شکست ولی من لگد را جای دیگری زده بودم و از این بابت خودم را بشخول و زنبه یارو نمیدانم Reproduce. گفتم اونو ولش از خودت بگو چه خبرها؟ انگام منتظر بود که همین یک جمله از دهانم بپرد راستی میخوام ببرمت یه جایی کجا تو بیا پشیمون نمیشی تو بگو کجا آخه بد خوش میگذره نترس مثل بچه دوستا حرف میزد چیزی نگفتم دور پرسید. چی میگی میای واسه همین کارهای بازاریابی و ایناست آره یه جورایی. خب حالا به من بگو ببینم که اون دخترم میاد دختر کدومه؟ لاله همون که وسط خیابون باش دست دادی کردی؟ در حقیقت داشتم برای حسن حرف درمیآوردم آوردم بنده خدا کی روبوسی کردی کرده بود که خودش خبر نداشت تو با اون چی کار داری؟ من کاری ندارم میخواستم ببینم اگه میاد منم بیام ببینم مزه دهنتون چیه؟ نه که هیچی فکر کنم اونم باشه نمیدونم یعنی بیشتر احتمال میدی باشه یا نباشه؟ میخوام بدونم. نمیدونم باید بپرسم. حالا تو میای یا نه؟ میام اگه نبود برمیگردم ها. آشه فهمیدم که اصلا حرفم رو جدی نگرفته است. از باشه گفتنش معلوم بود. قرار ما شد برای ساعت پنج بعد از ظهر. رأس 5 روی درب کمی رفتش دادم که خیال نکند از خودم بوده که دنبال سرش راه میافتنم.